اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بهین السعد صلواتی بر محمد و آل محمد بهترین حسن شروع کلاس ما است الله اللهم صل محمد و محمد بسم الله الرحمن الرحیم دراست نظریه تفصیلی بین سیرت الامه و بین غیرها صفحه 28 خد بين بین سیرت العامت في فی جمیع الاسار جيلا بعد جيل فتوحرزو فی هست سهتو ای للواقع و بین فلا یحرزو فی ذلك ولا یوجد القسم الاولو الا فی موارد دنادرتن و یمجنو انجز کرلها مثالون یا مثالو و لا مناقشت خیلی مثال البته الاخزه به ذواهل اماریتل یده خب ما تقریبا امروز خدا رو خیلی چیز سختی نداریم تکرار حفظی مقدار گفتیم سیره های اقلائیه رو نمیشه با هیچ کدوم از اون چهار تا ددیل سلام صحتش رو اثبات کرد سیره های اقلائیه تبیرم یه مقدار دقت کنیم سیره های اقلایه همش با اون تا دلیل نمیشه اثبات صحتش رو کرد اما دیروز انتهای جلسه به این رسیدیم که بعضی هاشون که چرا اون تا دلیل حالا همش هم نشد یکی دوتا از اون دلیل ها میتونست برای ما سیره آمه رو اثبات صحت کند خب پس اونجا از دست بدیم فوقش قائل رو به تفصیل میشیم میگیم آقا سیره های اقلایه بعضی هاشون که سیره آمه هستن اونا صحیح هست در به همین بودیم دیگه همش نه بعضیش بعضی هاش کرده هست مالای اطراک و کلو مالای حالا همین رو میخوایم شروع کنیم نتیجهش تفسیر میشه پس من این رو به شکل یک جمله میریزم که ورود به بحثمون دستتون باشه. میگه ایج همه سیرهای و بدایی اثبات نیستند صحت واقعی اگر صحت همه ادعاهای قابل اثبات نیست امطالاق بود برای اینکه خواستم گفتیم یکیش ملحق به عامه است خیلی خوب توضیح خوبیه ببینیم پس الان وارد دوباره اندار وارده بحث میشیم دراسته یعنی بررسی نظری تفسیل بین سیره عامه و بین غیر سیره عامه قد يفصلو بین سیره العام تفسیر داده شده بین سیره عامه مستمره در جمع آثار خب این المستمره صفه هست صفت توضیحی دیگه صفت صفت برای سیر عامه اینجوری مستمره در جمیع اعصار و امصار جیلن بعد قدجیلن جیل به معنی نسل نسل اندر نسل فتحرزو فی هست ات صحت در موردش احراز می شود معنای صحت ای المطابقه تل واقع و بین غیرها ها رز و فیه زالکه در تفصیل ما بین بین سیره عامه و غیر سیره عامه هستش که در سیره عامه این مطابقت واقع احراز می شود و یوجد یوجد القسم الاولوه لافی موارد نادرت حالا جای این نکته بگیم اون اینه که این سیره عامه لا یوجدو خیلی برش مثال نگردید. دنبال مثال نگردید. در موارد نادر هست. مثلا شما سیره ای رو پیدا کنید که بین همه انسان ها از اول تا حالا و تا روز قیامت است. شما همه انسان ها یه وقت انسان هایی داریم که ما واقعا تو بعضی از نقاط جهان به صورت وحشی زندگی میکنن اونا هم باید دارای اون باشن مثلا تو قبائلی از جنگل های آمازون که هستن بعضی هنوز بشر نتونسته بره اونجا نمیشه هم رفت داخل اون همه جنگل چه رو میشه یا در آفریقا و تو همین خود ایران الان باور میکنه یه صدی اقوامی داریم تقریبا نزدیک وحشی هستن یعنی هیچ کسی نه ماش تکنولوژی خاصی رفته بعضی از اونها رو مثلا ببینید که تو این مستندا اون طرف خودش ماجراجوه میره میگرده یه قومی رو پیدا میکنه توی خونه های خاصی زندگی میکنه خب همه اینا رو باید ثابت کنه که همهشون دارای اون سیره هستند لذا این انصافاً راست میگه لایور جبه این قسم اسم سیره عامه الا فی موارد نادش و یمکنو انیوز کراله ها مثالو میشه براش مثال زد من فکر میکنم این مثال ها مثال هایی که از عقلمون استفاده میکنیم و الا استقرائی نیست نگشتیم ولا مناغشت فیلم مثال تو مثالم میگه مناقشه نکنید ولی ممکنه تو این مثال ها ای باشه میگه دید. از جهت مناقشه در مثال دیگه جیر ندید شما الاخذو به زواهر همه ای انسان ها از حضرت آدم تا روز قیامت همشون به به زواهر عقص میکنند البته خب معلومه دیگه طرف یه که بیمار باشه و وسواس باشه و موارد خاص تو نمیگیم که آمه انسان های معمولی دیگه <تصفح> نه کن به زواهر؟ این اون زواهر نیست دار. این زواهر یعنی زواهر الفاس اون زواهر یعنی ظاهر حال تو به ظاهر حال و ها او اماریت لیت تو همین قبایل آمازون همای عسکری اگری وقت توفیق شد شما مشاهده شدین آمازون و اینها اون اطرافش قبایل برید میبینید که اگر کسی دستش چیزی داره اونی که میخواد چیز بخره میگه خب این مال خودش بود دیگه دستشه پس مال خودشه دیگه یا با هم حرف میزنن به همون ظواهر حرف خودشون اعتنا و اعتماد میکنند اینجور که یک قاعده دیگری داشته باشن حالا تو این دوتا مثال چه اشکالی میتونست باشه که ایشون میگه مناقشه در مثال نکنید چیزی به ذرتون میرسه من به نظرم اشکالی تو این دوتا مثال نیست این این دوتا مثال واقعا میشه گفت مثال هستن هم ظواهر هم یت مثال هستن برای اونی که سیری آمه است نمیدونم چرا گفته مولده همون آقشت فیلم حتما یه توش احساس کردند این ها نمیدونم اگر چیزی بزن تو رسم بکید خیلی خوب پس ما نظریه جدیدی الان میخواد برامون متولد بشود اون اینه تفسیر طائل می شویم. هر سیره آمهی صحیح نیست سیره های هر سیره اقلایی صحیح نیست سیره های آمه صحیح هستند و ما یلحبوبه ها خب دلیلشو بگید نکته جالب اینه که همون دلیل های که دوتا دلیل اول که برای اثبات سیره های آوردیم همون دوتا برای سیره های تکرار می میگیم اون دوتا دلیل زور نداشت هر سیره اقلایی را ثابت کند ولی زور داره که سیره آمهش رو اثبات کنه اثبات صحت کنه یه نکته همینجا داخل پرانتز بگم ما دنبال چی هستیم انا؟ دنبال اثبات اثبات صحت سهت. سهت, سهت, سهت, سهت سهت ها فعلا به شراعینا کاری نداریم بخواهیم میگیم سیره های آمه صحیح هم صحیح هم یعنی چی؟ یعنی مطابق باطن الوچه حال اول خاطرتون هست چی بود؟ وچه اول برای اثبات صحت سیره های اوگلایی کلم اون موقع گفتیم حالا الان برای فقط آمه بگیم چی بود؟ همین المعیون و نوابق و اینها وقتی در بین اوگلا هستن و همه اوگلا با هم یک صدا بر یک کاری توافق دارن نشون میده که این خطایی در اونها نباید باشه اگر خطایی بود حداقل یه دیوان و امراهی نمیکردم این از با حساب احتمالات هم احتمالش صفت شده خب ببینید ازت نفقاً اقلاعو به من فیهم این به من با مه هستش یعنی مه من با این اشخاصی که درشون هست من المعیین و حکماء المع گفتیم نواضح بابش ها بایش اهل دقت و نبوخ البته من میخوام بگم حتی اینم نباشه هم خود اقلا چند نیستم که مگر عاقل انسان ها ببینید آقل از حکمت بهرمند همه انسان های معمولی لازم نیست که حکیم فیلسوف نابغه اینها باشه مثلا هیچ انسان آقل رو نمیدید که به جای در از پنجره بیاد خوب این حکمته حکیمانه است. لذا اینارو رو گفته که محکمتر اثبات بشه دیگه و الله خود انسان ها حکیمن آقلن رقم اختلاف هم من جهات, جهات عدیدت هم. بیگه انسان ها رو میبینیم همشون متفقن این کار رو انجام میدن در حال که همین انسان ها در جهات مختلفی با هم اختلاف دارد الان همین بین خود ما هر مسئله مطرح کنی قطعا اختلاف پیش مثالش چه خیلی بارزه تو همین گروه ها تو گروه ها میبینید یه نفر یک چیزی میگه کچه کنم مس... مسئلهی رو میگه سه نفر تایید میکنن یه نفر بیدا میشه میگه مخالف همیالا دیروز مثلا توی یه گروهی هستیم گروه اون مسلمانی که ما هستیم یه نفر قیام داده میخواییم اکس شهده شهدا ها رو جمع کنیم بذاریم تو مسجد که یاد شهدا زنده بمونه فورا این رفتار مخالفت کرد گفت تو تو مسجد جای عکس نیست برای چی تو مسجد مسجد عکس می‌زنی بعد جواب دادم گفت نه چه اشکالی این حرفا بالاخره میخوام بگم که یعنی ما رو هر چیزی اتفاق نظر نداریم. حتی همین خدا طلبه‌ها میبینید که رو یک مزاره پیدا کنیم همه متفق باشن خیلی یعنی بعیده سخت پیدا میشه مثلا همین ولایت فقیه شرع مخالفت داریم در بین طلبه‌ها همین دیگه یعنی متفق نیستن از هر منشه این بلاخره متفق نیستن شهوات میاد نفسانیات میاد, میاد گناه میاد بعضی وقتا از جهت این آیه میاد که به ما چسبو یعنی به خاطر کارهایی که انجام دادن این دیگه نمیتونه دو مال حد باشه و این حرفا من خود بلاخره احتفاق پیش نمیادم حالا شما یک مسئلهی رو پیدا کنید که همه روش متفقه هم یک چیز ارزش میشه انصافه هم الان همین کتابای درسی تو قوضه اتفاق نیست بعضی میگن باید این عوض بشه این کتابای جدید خونده بشه بعضی ها کشبتت مخالف حالا الان یه جوری تقریبا تقریبا یه جوری با زرنگی اینا رو الان امثال جوری کردن و اگر میذاشتن بلای حالت معمولی شاید بعضی ها کفر میگوشتن میومدن توی خیابون چرا اینجوری شد و چرا <تصفح> بله <خیلی> مخالف <تصفح> بله تازه بعضی از مخالفت ها تازه داره نشون میده خودشون منظور اینه قراز هم اینه که ما مسئله ای رو داشته باشیم که همه روش موافق باشن بخصوصا یه مسئله اعمالی. اعمالی. حالا یه سیره نظریه. اما دي عمل ام. مثلا ممكن بعضی باولتاری موافقم نظری موافقم ولی در عمل میگه آ نه دیگه ما دیگه پیر شدیم دیگه ما حالا دنبال این چیزا نمیشیم بیا امرا موافقم این خیلی چیز با اغزشیه خیلی خب حالا میگه وقتی همه اوغلا با وجود اختلافاتشون در همه چیز ولی تو چند تا مسئله موافقم این حتما معلوم میشه که یه چیز صحیحی است و خطایی توش نبوده رغم اختلاف هم من جهات عدیدت الاتخاذ طریقتن في معیشت هم در زندگیشون راه و تر... طریقه تر... واحدی انتخاب کنن خیلی اینا اختلاف دارن یستبعد و جدن خیلی بعیده است بلیستحیل و عادتن محال عادیست البته توی محال عقلی نیست دار محال عقلی نیست محال, عقلی نیست. محال عادیست چه قبلا با سوزید خطا جمعیان جمعی هم فی ها طبقا لحساب الاحتمالاته خطای این ها همه که بگیم همگی اشتباه کرده اند. طبقا لحساب الاحتمالات خب قبل این رو توضیح دادم حساب احتمالات رو یه بار دیگه توضیح میدن چیزی تو زینتون هست؟ چه دار تو زینتون؟ آیا سری خودت چقدر تو زینت هست بگو تا اگر کم و داشته باشه بگیم من حسابه درجا رو دو به شمی سر رفتم حلقات رو باز کردم دیدم مثلا چیزی به اسم سیده اقلایی که سرش رو خود بس کنی که عده دو دل دسته دل عده دلده نفسی عدل دل غیر نفسی. سیده رو جز غیر یه اونجا بس کنه یه جا اونجا که داره سیده ای سر سیده اقلایی ب میره دسانه ایتر ولی و و دیگه عرض کردم یک خودش یک بحث در واقع علمی است از بحث های ریاضیات و اینها من اینجوری توضیح دادم فدمتون ساده ببینید اگر در سد نفر یک نفرشون به یه نظری قائل بشه ولی 99 نفر با اون مخالف باشه چند در سد احتمال خطاش هست این یه نفر در مقابل 99 نفر یعنی شما میخواد بگید که آقا در سمت راستی درسته یا در سمت چپی 99 نفر میگن سمت چپی یک نفر میگه سمت راست چند درصد احتمال صحت او هست یک درصد است 99 نفر اومد یک نفر اگر دو نفر بشه دو درصد سه نفر چهار نفر اگر همه افراد بگن در سمت راستی درسته چند درصد درست احتمال هست؟ 7 درصد حالا این تو 100 نفر 100 تاشون بگن دوباره فرق میکنه با اینکه هزار نفر بشن هر هزار تاشون بگن. هزار نفر یعنی هزار در هزار. یک میلیونش میشه یک میلیون در یک میلیون شما میدونید صد در صد مساوی با یک میلیون در یک میلیون است ولی دقت اون خیلی بیشتره. یعنی توی این صد درصد ممکنه تو یک میلیونی، یه دونه مخالف باشه ولی در یک میلیون در یک میلیون یه میلیونی احتمال هم نیست حالا همینو بیشترش کن الان چند تا انسان داریم؟ 7 8 میلیارد انسان داریم دیگه هر 7 8 میلیاردشون دارن این سیاره رو قهر میکنه میشه 7 8 میلیارد در 7 8 میلیارد به جای 100 درصد حالا اینو باز بیشترش کن از اول خلقت تا روز قیامت فرش کن 100 میلیارد انسان خلق شده و فاحت شد صد میلیارد در صد میلیارد یعنی صد در سدی که سد در سدی که تا صد میلیارد در درصد هم خطا نخواهد داشت خیلی دخیم شد یعنی احتمال دیگه میرسه به چهش میرسه به صفر این هم یه نوع استقلال هست یه نو بیان حساب احتمالات هست حالا اونیم هم چه مقلج مشترک کرده این هم باید. حالا این رو ببینید ما از کردم یه رشته است، یه تخصص. م... حالا ما هم دوروزه این بس های ریاضی اونها رو به این شکلی نداشتیم. باز ببینید دیگه توی اینترنت هم جستجو کنید. زمین که کتابای شهید سطر هم آدرس که معمولاً داده میشه، معمولاً تو تقریرات درس خارجشون هست. نه تو علقاض. تقریر درس خارجشون یکیش نوشته همین آیت الله شاهردی خدامرد معلوم شاهردی نوشتن که بووس هفت یکیش هم هم آیه هایری آیتالله هایری که چند وقت میشم یه بیانیه دار و ایران رو آمان شایی بیش بله دیگه ایشون هم تعدلات نمیشته این دوتا تعدلات ایشون رو من میشناسم از درست هاییشون اونا رو مراجعه کنید اونا شاید بیشتر بیشتر بیشتر هایی ایرانی؟ هایری یعنی کربلایی یعنی نمیدونم از اصلشون ایرانی بوده رفته اونجا یا چیه؟ داری شیرازی بوده شاید دوی خب پس طبقاً لحساب احتمالات این محال عادی است محال عادی است این حساب احتمالات تو همین برهان نظم هم هست شما الان اگر یک چیز منظم در کل خلقت داشتید احتمال این که نازم داشته باشه چقدر بود؟ یک چیز ما حالا حالا تا چیز، سه تا چیز. میلیاردها و بلکه دیگه بی نهایت اشیاء منظم دارید که همشون با هم همه انگیرد، با هم سازگارند و اینها. این دیگه از حساب احتمالات، این که خالق و نازمی نداشته باشد را صفر میکنه. البته از جهت اون علت و معلول، و علت و معلول، در اثبات خداون همین صرف وجود یک شیعی همون یه دونه کافی است. حساب احتمالات اینام نمیخواد. تا یک چیزی موجود شد خدا ثابت میشه. در را که این موجود دارید. خب، فیاسبوتو به اتفاق هم که از که سه حتی تلکت طریقت واقع خیلی خواه، خب. حالا که همه اقلا همهشون انصافن. حتی قبائل ورشی شد. دیگه در کرات دیگر رو نمیدونم اونها چی کار میکنند. ولی تو خود کره زمین هرچی هست اینها همشون اتفاق دارد دیگه ثابت میشود به اتفاق اونها چزاله که این شکلی اتفاق آمه با این چه اختلاف دارن. تو سه حت و تمچه طریقته در واقع یعنی آلم واقع رو هم ما میبینیم دیگه با این به منا کونه ها ما ینبقی ان یفع خیلی خب. یه لحظه اینو این رو دگاه ما الان در سیره عملی هستیم سیره عملی باید. سیره عملی همه اغلا این مارا رساند برد اینکه احتمال خطا چون همه است. احتمال خطای آنها صفر است احتمال حالا که احتمال خطا شد صفر نتیجه است چی میشه؟ یعنی این عمل عمل مسبور صحیح است خب مسبور صحیح است خوب عمل مسبور صحیح است یعنی یعنی ان یفعل یعنی یعنی یفعل میشه یا یعنی ان یترك یعنی یفعل چون صحیح است شما رو یاد یک چیزی میدازه اون هم همون برس عقل عملی مزفر یاده چونم؟ عقل عملی ینبقی ان یعلم نبود ینبقی ان یفعل بود میگه اینجا ما طلباً یه همچین چیزی میرسیم به معنات کونه ها مما ینبقی ان یفعل فیقونو حالا که اینجوری شد ارزشگذاری کنیم به این سیره ارزشش مثل همون حکم عقل میشه یعنی بقیه انگفال ها رو به ما میگفت فیکون و وزانها وزانش و اون ارزشش وزان مدرکات العقل العملی اینو کامل خوزید دادم رو تو باشه وقتی وقت کسی تو این خط اشتبانه خیلی خوب حالا که وزان اقل عملی شد و صحتش قطعی اثبات شد و یسه هل و علیها صحیح است بهشه اتکار کنیم این یسه هل اتکال و علیها یعنی این قطعا صحیح هست چرا اینو میگه چون میخوایم از روی این حکم شهری اثبات کنیم ها. همین ها در راه اثبات حکم شهری است. این یسه هل اتکال و علیها برای ما خیلی با ارزشه. شد لنها. حالا چرا؟ رنها مطابقتون للواقع چون مطابقه این مطابق بخونیم مطابق واقع است خب یه نکته اینجا تذکر بدم چه تو پایین گفته پاورقی این نکته رو تذکر داده اون نکته اینه که ما الان صحت این عمل را اثبات کردیم نه شرعی بودن اون حکمش رو حکم شرعی ثابت نکردیم گفتیم این عمل درسته بله از این میشه زد به حکم شهری رسید ولی خود این حکم شهری نیست پاوراقی رو بعدا یه مطالعه بکنید. بسیار خوب این هم از این حالا یک یکم یه نکته میگه. ببینید یک یکم بد نیست این چه گفت از سیره به این رسیدیم که یعنی بقی یفعر مثل حکم عقل عملی است تو پاورری میگه کم استش حدش شیخ رحم الله به حکم الاغلاء کافخم حالا برائت می دیگه درسته به قبح مؤاخذه المولا عبده علی فعل ما يعترف و به عدم اعلامی اصلا به تحریمه علی حکم العدل به قبح العقابه علیش علی شیء من دون بیان تکلید شیخ انصاری اومده قبح عقابه بلا بیان رو یه وقت است میاد شما از حکم عقل استدلال میکنید میگید عقل میگوید اقاب بلا بیان قویحان پس چارم نمیتونه اقاب کنه. این حکم عقل بود یه وقت هست میگید که همه اقلا همچین بنایی دارد که مولا عبدش را اقاب نمی کند بدون بیان چون میدونن هرچی من دیگه اقلا حکیمن قبیح میدونند ایکارو نمید از این سیره اقلا بیایید اثبات کنیم پس اقاب بلا به هست ببینید این دیگه از سیره استفاده کرد نه از حکم عقل عملی شیخ حضالی میگه اونجا این کار رو کرده از این سیره استفاده کرده خب بگیم ما همین رو امروز کار کردیم بسیار خوب این وجه اول در اثبات صحت و مطابق واقع بودن اون فعلی که همه اوقع روش سیده دارن اول وقت گفتیم یه مورد از سیده خواستم ملحق به اوس خواه الوچ و سانی. قبل از که الوچ و سانی رو بگم یه نکته بگم که صفحه بعد خودش تذکر خواهد تار همین همینجا بگم برهان اینی و برهان لیمی تو منطق هوندیم دیگه به ما یاد دادن من یه سوال از شما می‌پرسم جواب بدیم اگر من بگویم که در اینجا آتش وجود دارد پس حرارتی هم ثابت میشه وجود خواهد داشت اینجا از چی به چی رفتم از علت به معلوم رفتم آتش علته حرارت معلوم. خب اینو این نیمیکن یا نمی؟ لیمیه از علت به من این لیمیه همونجا یاد دون لیمیه یه یعنی از لمه از آتش به حرارت پیم بریم چرا حرارت هست چون آتش هست یه وقت هست میبینم که وارد اتاق میشم خیلی حرارت داریم اینجا خیلی گرمه از این گرماش میفهمم که آتیشه روشنه بخاری روشنه اینجا از معلول به علت برگشتن این هم استقلاله این نمیشه. خب. حالا، الان این استدلال اول، یعنی وجه اول که از اجماع و سیره همه اقلا، سیره عملی اقلا به این رسیدیم که اینها اینها اخت... خطایی توشون نیست خطا ندارن این, این لینمیه یا انیه یعنی از علت به معلول رفتیم یا از معلول به علت یه لحظه نگاه کنیم همه اقلا اول... متفقت نتیجهش میشه که اینها اختلافی یعنی اینها خطایی توشون نواد باشه از علت به معلول رفتیم از معلول به علت از علت به معلول اتفاق همه اغلا نتیجه میدهد عدم خطاشون رو طبق حساب احتمالات اینها حال اینو داشته باشیم وجه ثانی که میگه بلعکس میشه از معلول برمیگردیم به علت خب، البته وجه ثانی و سیرت العامته ان سبب اَنْ اُقَلَایِنْ مُتَبَرَنْ نمیدین؟ اصلا همینجا هم معلومه دیگه یه رسولی سیره آمه کاشف از چی؟ از سبب از علت و این میشه برهان اینی اَنْ ای سِیرَتَرْ اَقَلَ خب همینه یکی خوندیم دیگه چند روز پیش الان وچه اول رو هم کنده بودیم وچه دوم هم همونیه که آسید هم در موردش حرف د یعنی میگه آقا وقتی سیر عامه داریم معلوم میشه این از تعلیم انبیایی یک نکته ارتکازی اغلایی چیزی برخواسته دیگه حالا ببینید این نصیرت الاغلاییت ازا کانت آمتم مستمرتم فی جمیل الازمنت و الامکنت المختلفت من دون هیچ ای قرار این بین من این رو تذکرم گفتم سیده های عامه اینجوری قابل استقرا نیست قابل استقرار مثل اجماع محصل میشه دیگه نمیشه رسید اگر ما میگیم همه این رو عمل کردند داریم این رو از عقل خودمون استفاده میکنیم آقا. یعنی علل قاعده داریم میگیم تو اجماع اگر پسگریان تپارسان میگفتم میگفتم این اجماع محسل علل قاعده است نجشت. طرف داره میگه آقا همچین روایت توش داریم به این خوبی هیچ مشکلی هم نداره نه سنداً نه دلالتاً پس حتما همه قابل هم دیگه این علل قاعده است حالا اینجا میگیم علل قاعده همه به زواهر عکس میکنن دیگه بعدا کسی نرفته همه رو بگرده اگه بخواد بگرده اولاً نمیتونه همه جا رو بگیره ثانیاً در زمان چه که نمیتونی قهر کنی 100 سال پیش رو میتونی بگیری نمیتونی بگیری پس ما در واقع این آمه بودنش رو علال قاعده داریم میگیم خب این نسیره و قلایی ازادتان از مستمده مستمره در جمعی عزمنه و امکنه که من مختلفه مندونه ایه قراره بینه هم قرارداره منی همون قرارداد هست بدون اینکه اینها ها قرارداد یه چیزی به این خودشون بسته باشن یا اقصد من و شما قرارداد می‌بندیم. میگیم آقا از فردا اینجوری برخورد کنیم از فردا من هر وقت این لفظ رو گفتم این محنها رو بفهمید مثلا این قرار میسازه اون سیره رو حالا این میگه نباید قراری باشه تو سیره های آنبه قراری نیست خب چرا اینو میگه میخواد بگه یعنی سیره برخواسته از درون نه اینکه از بیرون قراری به یه نفر تحمیل شده باشه از درون برخواسته اینو چرا میگه چرا میخواد از درون باشه میخواد به اون سبب پی ببره بگیر ببینید اینها معلومش از یه عمله است یا یه تعلیم انبیاءیست که در صحات اینها نفوز کرده رو کرده من دونه یه قرارن بین هم فلا بود دامن ان یکون لا من اون واحدون و سبب اون یک منشه و یک سبب متفرد فارد یعنی همون فرد دیگه یکی شما ماجرا نمی نه بابا شاید احوا شهوات نفسانیات اینها موثر رو نمی نه اینها داخل نبوده و یب اودا جدا ک و من مثل الاحوا النفسانیه و صلایق شخصیه چرا چرا از اونها ناشی میشه میگی چون از همین صلایق وقتی خودت داری میگی صلایق یعنی انسان ها سلیقه های و ناگون سلیقه های اونا که یک سیره به ما نمیده که لکاون ها پس ببینید سلایق اون صلاحیت متشتتتن و والافراد الان شما همین کربلا مشاهده می‌کنید اونا چای رو چه جوری مدل خودش ما چای رو چه جوری می‌خوریم مدلش بعضی اقوام برید اصلا چای نمیخوره اصلا بعضی اقوام ولی این چیز دیگه‌ای به جای چای چای داره پس سلائق مختلفه بی خود خودتون اذیت نکن با سلائق و شهوات و اینا واحد به دست نمی اومد و بود دخت امسالها ها فی ازم الاقلاء جمعیه هم با ای دست دخیل باشد امسال احوای نفسانی و سلائق در ازم همه اقلاء شما ممکنی بگید خب شهوات میگیم آقا جان شهوات؟ باعث میشه یه دی انسان های تابه شهوات این سیده رو اجران میکنن اونایی که تابه شهوات نیستن که این رو اجرا نمیکنن به بعید است امثال سلائق و شهوات و اهوا نفسانی اینها همه اقنار رو دنبال خودش بکشه ببره همین می بینید تو همین اختشاشات بعضی ها یه مدلن بعضیا ها یه مدلن, مدلن کاملا برعکسشن این میاد فخش ناجور میده یعنی این سیرش همینه این اصلا زندگیش همین بوده که به همین راحتی الان داره فخش اون یکی به جایی که فخش بده میگه به من فخش بدید من اصلا جان من فدای ایران خواهم کرد جان هم فدای کشور رو دینم خواهم کرد این با این خیلی فرق داره این سیر ناشی از احوا شهوت و این هاست اما این یکی ناشی از سیر. نمیشه همه اقلا هی رو به این سیره شهوتی باشن اگر شهوتی بود وقتی منشه سیره شهوت باشه یه ادهی خودشون رو میچشم کنار پس حالا چه سیره همگاه نیست معلوم میشه شهبات و صلاحیت و اینها نبوده هم تو درستی؟ فیتعینو که سیدت ناشعتن من سببن اقلاعین معتبرن پیش همشون معتبر است. چه تعلیم نبی یکی من الانبیاء او ادراک ادراک العقل العملیه البته خب این تعلیم نبی رو میتونید اشکال کن که آقا جان پس اون اقمام قبل از اون نبی چی اگر اونا این سیرا رو نداشتن ما این سیرا رو سیر آمه سیری عامه نگفتیم که میشه سیری خاصه سیری عامه بود که همه از همون اول تا آخر حالا این یه مصامله اینجا هست یا سببش ادراک عقل عملی است عقل عملی میاد میگه که جنبغه ان یفعد جنبغه ان یفعل چه شد همه این رو تبعیت میکنه حالا اینجا هم باز میشه اشکال که عقل عملی هم همه تبعیتش نمیکنه مگه روشن ترین حکم عقل عملی این که از ظلم و قبیح ها خب زول دادم ظلم دو روش میشه فکر کرد و اغان ما اغان ما کانا هر که باشد شما محکنه بگیردن هیچی دیگری. یا امر جبلی. یا امر فطری. حتی حکم عقلم میشه میشه خیلی حکم با هرچی باشه. اگر ما این اگر ما رو روش میستید. یعنی سبب هر چی که باشد. هوای داخل کانه به سبب میخوره. فی یه جمع به حال اینش مهمه. یه جمع به سهتها. و جواز التتكال ها ببین این جواز التتكال دوباره به هم قبلیه چون میخوام ازش ورقم شرعی اثبات کنیم مندون الهاجه ال امضاء و احرازه همین که این سیره هست صحیحه صحیح که شد میشه بهش تکیه کرد میگم خب واسه این سیره رو ببینیم شاره امضا کرده یا نه میگه نمیخواد بابا نمیخواد سیره صحیحه مطابق واقع این کار درسته پاورقی صفحه قبل دوباره تذکر دادم این حوجم شهر نگفتیم ازش حوجم شهر رو بعدا از این استفاده خواهیم کرد این صرفاً صحت بود و فی حق حاذ الحسیات خیلی خب اینم بچه دوم حالا میگه که فرماش آقای اصفهانی و بعدش هم یه كلامی از آقای نائینی میاره میگه این دوتا هم در همین راستا در مورد همین بچه و فی حق حاذ الحسیات ال عامه المستمرته ما حجي عن السيد اصفهانی یه رحمه الله فی مقام تعین من شعر اماریت رید برای این یک مقدر خوبیه دیگه یعنی آدم کنجگاه بیشه چطور قاعده بین همه مقبوله و همه دارن روش تکیه میکنن باهاش عمل میکنن چطور؟ ولی اینها سوار شده روش فکر کردن گفتن آره دیگه منشهش معلوم میشه که یک امر مرکوز فی اذهان بوده چی چی بوده اینا الان میخونی باز چما تقدمه چه قبلا گذشت من ان الظاهره كون که من باب الارتكاز العقلائي یک امر مرکوز نهاده شده حالا منم نهادی شده بگیم درست میشه یا نه یک امر قرار داده شده در عمق دلشون ارتکاز اقلایی یعنی و ان اماريتها اماره بودن یت امران جبلي غریزی یون. دیگه تکرار دیگه, دیگه او و فی هم باره فیهم باراهم خالقشون در اینها به ودیع نهاده حکمتن منه مفلول له. حکطن من, من تعالی و رعفتن علیهم مفلول الله حفظن چرا حکمت خدا این کار رو اختضا کرده است بفزن نظام دینهم و دنیا هم اگر همین قاعده یت رو اعمال بودن یت رو شما ورد دادید از بین اوغلا دیگه تقریبا خرید و فروش رو همه چیز به هم میخوره. چه سایر و تباعه مثل سایر قرار مثل از کردم بچه غریزه شده که تا به دنیا آمد بدون هیچ تعلیمی بلده چطور شیر بخوره خودش رو سیر کنه بلده خب این غریزی که اوده او برش خداوند چه سایر و تباه تبعشنه وقتی احساس گوشنگی کرد میره ایچی میخوره اگر اینا نبود که میمر از بین میرن و سایر ماکانه بنا هم علیه به هیسو اصلا یه جوری هست آیستوانی بگم که لایل تفتون ایلا منشه ارتکازه هم اصلا خودش هم توجه نداشت که این منشه ارتکاز از کجاست بهش میگفتی چرا الان داری گوشنگ شده میری بخوری؟ این چه سوالیه تو باید بخورم دیگه فکر نمی که این یک امر ارتکازیست خدا در من قرار داده بل یجرونه طبقاً ت... یجرون الارتکازه الان ما هم مجبورون علیه اینها اجرا میکنند کنند این افعال رو طبقاً یجرون از باب افعال گرفتم اجرا یجری شاید سلاصه مجرد هم اینجا بشه یه جوری درستش کرد معنیش طبقاً ارتکاز هم علا ما هم مجبوردون علایت بر همون چیزی که این ها فطری و جبلیشون هست و اونجوری ساخته شدن طبقاً همون عمل میکنن و هازا ها المراد من بنایل اقلای فی کل موردن این همون منظور ما از بنایل اقلا در هر است خب میگیم آقای, آقای این معلفین کتاب خب این پس چرا اونجا رو بردید؟ این بنده خدا داشت خودش میگفت من سیره عقلایی عامه رو دارم میگم شما چرا تو اون بحث قبلی آوردید که سیره عقلا به کلی رو داشت بحث میکردید اون بحث قبلی بحث بیفایده ای بود سیره عقلا خوره سیره عقلا رو بخوام ثابت کنم که نمیشه معلومه دیگه این دلیل ها هم برای سیره عامه است لذا اون بحث قبلی یه مدار بیفایده بود دیدید دیگه چهار تا دلیل هیچ به درد و ان شئت تفقل این ها او قلائیون آیه سوانی ادامه میده مثلا ایشوناها انها تعبدن او قلائیون این یه او قلائی است که همه این کار رو دارن انجام میدن به خاطر بپرسی هم میگه نمیدونم دیگه این جوریه دیگه این نمیدونم این جوری عمل میکنم تعبد میشه مثل احکام تو احکام میگه آ چرا نماز صبح رو دو رکعت خوندی خب سه رکعت خوندی نمیدونم به واسه دو رکعت بالغ خوندم تعبد اینه منشاو ذا کرد امرل غریزی یا الجبلی یا از تکبینی و یعنی خدا در ها قرار داده جبلشون این رو داره غریزهشون تکمین شده اینجست ساخته شدهاند مثل سایر قراراعزه و حزن معنا امرال غیر وقابل ج شرع نفان و, و اثبات هم هدجیت یقین یا اتقای از کردی؟ هر ساید این آغمی با این داشت یقین قابل جهل هدجیت نه اثباتن من نه نفیم بود اینم هم شبیه اونه نمیشه امر رو نفیم و اثباتن جهلش کرد چرا نمیشه جهلش کرد؟ اما نفیم فلکاونه خلاف الحکم شاره نمیتونه بیاد بگه آقا از این به بعد به قایده عمل نکنید خلاف حکمت به همه چی به هم میخوره اثباتاً چاره بیاد بگه آه من در شما قاعده ید را قرار دادم اینا میگن نمیخواد ما خود ما از اول داشتیم این اگه تون فیلم اخزارجی ها گفت خدا یه جا برا پیدا کن تون ما اومده بود اون باران برد خودش پیدا کنه خدا نمیخواد خودم پیدا کنه حالا اینجا ما اینو داریم دی خدا نمیخواد پیدا بده ما قاعده ید را داریم <تصفيق> نمیخواد این رو جرب کنه در ما اما اثباتا فلنه هم مجبولون علیه بله این نکته رو بگه البته خدا میتونه بیاد بهش رنگ بروی شرعی بده به یه قاعدیت مثلا شرعن واجب است. درست شما دارید ولی شرعن هم واجب هست میتونه این باشه حالا این ممکنه کسی به این خب این امرو لربش دید شاید این میشه روش بحث کرد خب این فرماشه های اسفانی پایین هم آدست د حالا و چهزار معفید دفی تغییر اببحاس محقق نائنی یه عبارت هم ازشون بکنیم عبارتشون یه مدل دیگ است همین مطلب رو ثبات خواهد کرد که سیره هایامه ناشی از همین قور اخلی اوقلایی است ولی یه جور دیگه بحث میکنه ببینید میگه و چهزار یعنی همون جوری است این هم در حد سیره های آم است، ما عفی دفی ت اببحاصل محقق ناحیننی یه رحمه حالله، من انم مبدع طریقت الاغلائیت لا یخلو اما ان یکون فلان این یک صفحه بعد و اما ان یکون مبدعها اینم دو و اما ان تکون ناشعطن اینم سه سه تا منشه از میکنه بعد که سه شو گفت بعد میگه ولا یخوا بوده وجه اول بلکه استحالتش و جزال وجه ثانی فل متعین و خوال وجه استقام بلی عبارت رو گفتم برای تو پس آیه اینی. سه تا وج میگه برای سیره همه که سببش چی بوده سه تا وج رو که گفت وجه اول مستحیله وجه دوم من به درد نمیخورم وجه سوم که همینی بود که ما گفتیم آیه ازفانی هم. وحج از امامی افی در تقریر ابوالحسن محقق نایینی رحمه الله من ان مبداه طریقه اوغلا ی لا یخلو خالی از این نیست که یکی از این ستا باشه اما ان یکون لقهره قاهر و جبر سلطانه یه شخص قاهری داریم که قهر کرده asker قهر کرده نه اینکه ناهت شده باشه نه یعنی اجبار کرده قهر جميع اوغلا عصرین همه رو به زور وادار کرده این کارو بکنن تیلجد طریقت و تخه و زمان حالا که این آقا اومده جعب کرد مثلا شام ها جعبه کرد گفت هم باید اجابشون رو تا اینو گفت به زور دیگه همین رو اتخاص کرد و همه اوقل همین رو پیدا میکرد این همچین چیزی. و ت و تخ زمان متخر لهم و الو ان صورت من هم. این انقدر ادامه پیدا کرد دیگه همه گفتن اوه زن باید 2000 بشه بیا اصلا نمی‌شه زن 2000 با باشه گفتن همچین صورت و اما یا اینکه دو مشهد دو ان یکون مبداها امر نبیگن من الانبياء بها نبی به اون همچته فی عصرهم حتی استمرت یا اینکه سه و اما ام تکون ناشتا ان فطرتهم مرتكزات ته فی از هم این خوبه حسب ما او الله و تعالفی تباعهم هم به مخت از حکمتل بال غ نظام خیلی خب این ستاچه شد میگه ولا یخف بادل وجه اول اون بعیده یه شاهی این کارو کرده باشه بابا چون این باعث سیری امه نمیشه، خیلی مخالف مخلام این رضضاش ها رو خیلی مخالفت کرد. بل استحاللت عادتا این محاله وجه از الله وجه اون هم مت... اون هم مستوعد فلمتعین همین بچه سالس هست که ما از سیره آمه میفهمیم که منشهش از فطرت اونها برخواسته نه از شاه و نه از انبیار خدا از همون فطرتشون برخواسته سلام و فطرستی الله سلام